14 کشف نادانی اگر مثلا یک دهقان اسپانیایی در سال هزار به خواب می رفت و 500 سال بعد با تنین صدای ملوانان کلمب که وارد کشتی نینا، پینتا و سانتا ماریا می شد از خواب بیدار می دنیا کاملا برایش معنوس می نمود. اما اگر یکی از ملوانان کلمب به خوابی عمیق فرو میرفت و با صدای زنگ آیفون قرن 21 از خوابی دار می خود را در دنیای بیگانه احساس می کرد. او از خود می پرسید آیا من در بهشت هستم یا شاید در جهنم؟ این پانصد ساله اخیر شاهد رشد شگفتانگیز و بی سابقه توانایی بشر بوده. در سال 1500 قریب به 500 میلیون انسان خردمند در تمام دنیا وجود داشت. امروز دنیا 7 میلیارد جمعیت دارد. مجموع کل ارزش کالاها و خدمات تولید شده توسط انسان در سال 1500 چیزی در حدود 250 میلیارد دلار امروزی برآورد شده. امروز ارزش تولیدات انسانی بالغ بر 60 تریلیارد دلار در سال تخمین زده می شود. در سال 1500 بشر در حدود 13 تریلیون کالری در روز مصرف کرد. امروز ما 1500 تریلیون کالری در روز مصرف کنیم. روی ناداد کمی فکر کنید. حجم جمعیت تا کنون 14 برابر شده، تولید 240 برابر و مصرف انرژی 115 برابر شده. فرض کنید که فقط یک کشتی جنگی به زمان کلمب انتقال می‌افت. چند ثانیه بیشتر طول نمی‌کشید که نینا، پینتا و سانتا ماریا را به سوخت هیزم خود تبدیل کند و تمام کشتی های قدرت های بزرگ آن زمان را بدون آنکه خراشی بردارد غرق کند تنها پنج کشتی باری جدید میتوانست تمام کالاهایی را که تمام کشتیهای تجاری آن دوران حمل می‌کردند جابجا کند یک کامپیوتر جدید به سادگی می توانست تمام واژه ها و ارقام در تمام کتاب های قانون، تومارها و کتابخانه های قرون وستا را در خود ذخیره کند. موجودی هر بانک امروزی بزرگی بیش از موجودی تمامی پادشاهی های پیشانوین است. در سال 1500 شهرهای معدودی بیش از 100 هزار جمعیت داشتند. اغلب ساختمان ها از گل و چوب و پوشال ساخته می شدند و یک ساختمان سه طبقه یک آسمان خراش محسوب می شد. خیابانها شیارهای خاکی، ناهموار و قبارالود در تابستان و گلالود در زمستان داشتند و افراد پیاده اسب و بز مرغ و معدودی ارابه در آن تردد می کردند. بیشترین صداها، صدای انسانها و حیوانات همراه با صدای گاهگاهی چکش و عره بود. پس از غروب آفتاب، تاریکی همه جا را فرا می و تنها معدودی شم و مشعل در تاریکی سوتو سو میزد. اگر یک ساکن چنین شهری، چشمش به شهرهای نوینی چون توکیو، نیویورک یا بمبعی میافتاد چه فکر میکرد؟ تا قبل از قرن شانزده هیچ انسانی کره زمین را زیر پا نگذاشته بود این وز در سال 1522 با بازگشت ماژلان به اسپانیا از سفر اکتشافی 72 هزار کلومتریش عوض شد این سفر سه سال طول کشید و به بهای جان تقریبا تمام ملوانان از جمله خود ماژلان تمام شد در سال 1872، جول ورن، مردی ماجراجو و مرفه به اسم فیلیاس فوق که میخواست به یک سفر دور دنیا در 80 روز برود به تصویر کشید. امروزه هر فردی با درآمدی در سطح طبقه متوسط میتواند به سادگی و بدون خطر ظرف 48 ساعت به یک سفر دور دنیا برود. در سال 1500، انسانها در سطح خشکی زمین محصول بودند. آنها می برج بسازند و به قله ها صعود کنند اما آسمان قلمرو پرندگان، عقابها و خدایان بود. در 20 ژوئیه 1969 انسان به ماه سفر کرد. این تنها یک دستاورد تاریخی نبود، بلکه یک گام تکاملی و حتی کیهانی بود. تایه چهار میلیارد سال تکامل هیچ موجود زنده ای نتوانسته حتی جو زمین را تر کند و قطعا هیچکس از پا یا شاخک خود را به سطح کره ماه نگذاشته بود. در اکثر دوره تاریخ انسان هیچ چیز راجب 99 و 99 دهم درصد از موجودات زنده روی سیاره یعنی موجودات زنده ریز میکرگانیسم ها نمیدانست. این به این دلیل نبود که آنها اهمیتی برای ما نداشتند. هر یک از ما میلیون موجود تکسل دولی خود داریم. آنها بهترین دوستان ما و کشنده ترین دشمنان هستند. بعضی از آنها غذای ما را هضم می و احشای را تمیز می در حالی که بعضی دیگر موجب ناخوشی و بیماری های مصری می اما اولین بار در سال 1674 بود که چشم انسان به جمال یک موجود زنده ریز روشن شد یعنی زمانی که آنتون فان لیو هوک به درون میکروسکوپ دست ساز خود خیره شد و از رویت یک دنیای کامل از موجودات ریز در یک قطره آب که در تکاپو بودند پاک مبهوت ماند تقریبا 300 سال بعد از آن انسان‌ها با تعداد عظیمی از انواع میکروسکوپی آشنا شدند. ما موفق شدیم بر اکثر بیماری‌های مصری که اینها برایمان ایجاد کنند غلبه کنیم و حتی این موجودات زنده ریز را در مهار خود به خدمت پزشکی و صنعت درآوریم. امروز ما باکتری‌ها را برای تولید دارو، به وجود آوردن سوخت زنده و کشتن انگل ها به کار می‌گیریم. اما برجسته‌ترین و شاخص‌ترین لحظه در 500 سال اخیر ساعت 5:29 دقیقه و 45 ثانیه روز 16 ژوئیه 1945 بود. در آن لحظه، دانشمندان آمریکایی اولین بمب اتمی را در آلاموگرودو نیومکزیکو منفجر کردند. از آن لحظه به بعد انسان قابلیتی را از خود نشان داد که ثابت می‌کرد که نه تنها قادر است مسیر تاریخ را تغییر دهد بلکه می‌تواند به آن خاتمه دهد آن روند تاریخی که منجر به ماجرای آلام و, گردو و سفر ماه شد به انقلاب علمی شهرت پیدا کرد انسان در طی این انقلاب با وقف منابع در تحقیقات علمی توانایی‌های خارق‌العاده جدیدی به دست آورد این یک انقلاب محسوب می شود زیرا انسان تا مقطع 1500 میلادی در توانایش برای رسیدن به قابلیت‌های پزشکی، نظامی و اقتصادی تردید داشت. حتی اگر دولت‌ها و حاکمان اقتصادی توانمند منابعی را به آموزش و تحقیق اختصاص می‌دادند، هدف در کل نه کسب قابلیت‌های جدید، بلکه حفظ قابلیت‌های موجود بود. یک دولت مدار معمولی پیشانوین منابع مالی را به کشیشان، فیلسوفان و شعرا اختصاص می‌داد تا به حاکمیتش مشروعیت دهند و نظم اجتماعی را حفظ کنند و توقعی از آنها نداشت تا راه های علاج جدیدی را کشف کنند، صلاح نظامی جدید ابدا کنند یا اقتصاد را شکوفا کنند. انسان تای پنج قرن اخیر به طور فضاینده ای به این باور رسید که قابلیتهایش را با اختصاص دادن منابع به تحقیقات علمی افزایش دهد. این فقط یک ایمان کور نبود بلکه آزمونی به کررات تجربه شده بود. هرچه آزمایشات بیشتری صورت می‌گرفت، ثروتمندان و دولتها بیشتر علاقمند به سرمایه‌گذاری روی علم می شدند. اما بدون چنین سرمایه هایی هرگز نمی بر کره ماه قدم بگذاریم، موجودات زنده ریز را مهندسی کنیم و اتم را بشکافیم. برای مثال دولت آمریکا در دهه های اخیر میلیاردها دلار به مطالعات فیزیک هسته اختصاص داده. اطلاعات به دست آمده از تحقیقات امکان ایجاد پایگاه‌های نیروهای هستهای را به وجود آورده که برای صنایع آمریکا برق ارزان تولید می‌کنند و این صنایع به نوبه خود مالیات‌های جدیدی را به خزانه دولت واریز می‌کنند که برای تحقیقات بعدی در فیزیک ای مورد استفاده قرار میگیرند. چرا در انسان نوین این باور فضاینده شکل گرفت که میتواند توانایی خود را با پرداختن به تحقیقات افزایش دهد؟ چه چیزی پیوند میان علم، سیاست و اقتصاد را به وجود آورد؟ این فصل نگاهی خواهد داشت بر ماهیت منحصر به فرد علم نوین تا به بخشی از پاسخ برسد. دو فصل بعدی شکلی گیری پیوند میان علم، امپراتوری های اروپایی و اقتصاد کاپیتالیستی را مورد بررسی قرار می دهد. علم به چیزی بیش از تحقیقات صرف برای پیشرفت خود نیاز دارد. این بسگی دارد به تقویت متقابل علم، سیاست و اقتصاد. موسسات سیاسی و اقتصادی منابعی را فراهم می کنند که بدون آنها تحقیقات علمی تقریباً غیر ممکن خواهد شد. در پاسخ تحقیقات علمی نیروهای جدید را به وجود می‌آورند که از جمله برای رسیدن به منابع جدید استفاده می‌شوند و بخشی از آنها دوباره در تحقیقات سرمایه‌گذاری می‌شوند ما نمیدانیم. انسان‌ها حداقل از زمان انقلاب شناختی در پی درک جهان بودند نیاکان ما بخش عظیمی از زمان و توان خود را مصروف کشف قوانین حاکم بر جهان طبیعت کردند اما علم نوین از تمامی سنت های پیشین دانش در سه زمینه اساسی متفاوت است یک تمایل به اعتراف به نادانی نوین بر پایه اصول ایگنوراموس ما نمیدانیم. استوار است که فرض را بر این میگذارد که ما همه چیز را نمیدانیم. مهمتر از آن این است که آنچه را که فکر میکنیم میدانیم، بعدها با وسعت دانش ما ثابت میشود که اشتباه بوده. هیچ اندیشه، عقیده یا نظریه تقدس ندارد و بری از چالش نیست. دو جایگاه مهوری مشاهده و ریاضیات علم نووین با اعتراف به نادانی در پی رسیدن به دانش جدید است. این امر با جمعآوری مشاهدات و استفاده از ابزارهای ریاضی برای پیوند دادن این مشاهدات در قالب نظریاتی جامع صورت میگیرد. سه، کسب نیروهای جدید علم نوین به آفرینش نظریه ها بسنده نمی کند بلکه از این نظریات برای رسیدن به توانایی جدید و بخصوص توسعه فناوری های جدید استفاده می کند. انقلاب علمی یک انقلاب در دانش نبوده بلکه قبل از هر چیز یک انقلاب در نادانی بوده. کشف بزرگ انقلاب علمی کشف این امر است که انسان پاسخ مهمترین سوالات خود را ندارد. سنت‌های دانش پیشانوین مثل اسلام، مسیحیت، آیین بودا و آین کنفوسیوس ادعا می‌کردند که همه چیزهای مهم درباره جهان را هماکنون میدانند. خدای بزرگ یا خدای یگانی مطلق یا انسان‌های فرزانه گذشته خرد جامع را در تملک خود داشتند و آن را در قالب رساله‌ها و سنت‌های گفتاری سینه به سینه برای ما آشکار ساختند. مردم مأموری فانی در این متون و سنت های کوهن تعمیق می کردند و به خوبی آنها را فرا می غیر ممکن بود که کتاب های مقدسی مثل قرآن یا ودا در راز بزرگ جهان اشتباه کنند. رازی که در این حال می بایست توسط موجوداتی از گوشت و خون کشف شوند. سنت های کوهن دانش فقط به دو نوع از نادانی اعتراف می کردند. اولین که یک فرد میتوانست از چیز مهمی ناگهان باشد برای کسب اطلاعات لازم تنها کاری که او می انجام دهد این بود که از فردی داناتر بپرسد دانستن چیزی که کسی اطلاعی درباره آن نداشت ضروری نمی‌نمود برای مثال اگر یک دهقان در روستایی در یورکشایر در قرن سیزدهم میخواست بداند که نژاد انسانی چگونه به وجود آمد چنین فرض میکرد که سنت مسیحی پاسخ قطعی را دارد. تنها کار لازم این بود که از کشیش محل بپرسد. دوم اینکه یک سنت کامل ممکن بود از چیزهای بی اهمیت ناگاه باشد. آنچه که خدایان بزرگ یا فازران کوهن از گفتنش به ما احتراز میکردند، در واقع مسائل همیتی بودند. مثلا، اگر دهقان یورکشایر ما میخواست بداند انکبودها چطور تار خود را میتنند، سؤال از کشیش در این مورد میتوانست بیمعنا باشد زیرا جوابی در این باره در هیچ از متون مقدس مسیحیت وجود نداشت. اما این بدین معنی نبود که مسیحیت ناقص است بلکه از این رو که دانستن اینکه که چگونه تارهایش را میتند بی اهمیت است با این وجود خدا کاملا میداند که انکبوت چطور تارش را میتند اگر این دانش برای سعادت و رستگاری انسان ضروری بود خداوند در کتاب مقدس درباره آن توضیحی قابل درک میداد مسیحیت مردم را از مطالعه انکبوت ها من نمیکرد. اما اگر انکبود شناسانی در دوران قرون وسطا وجود می‌داشتند، می‌بایست به نقش حاشیه‌ای خود در جامعه و دانسته هایشان با حقایق ازلی مسیحیت واقف باشند. صرف نظر از اینکه این دانش درباره انکبودها بود یا پروانه ها دانشی بی اهمیت بود و تأثیری بر واقعیات بنیادین جامعه، سیاست و اقتصاد نداشت. در حقیقت مسائل هیچگاه به این آسانی نبودند. در همه دورانها، حتی در محافظ کارترین و ظاهدترین دوران، مردم یافت می شدند که معتقد بودند که مسائل مهمی وجود دارند که مجموعه سنت ها از آنها آگاهی نداشت. اما این افراد معمولا به حاشیه رانده می یا مورد عذیت و آزار قرار می گرفتند یا اینکه سنت های جدیدی ابدا می کردند و ادعا می کردند که خودشان همه دانستانی ها را دانستانی برای مثال، محمد، پیامبر مسلمانان، فعالیت دینی خود را با محکوم کردن یاران عرب خود برای زندگی در جه نسبت به حقایق آسمانی به پیش برد. اما محمد سریعا مدعی شد که خودش از همه حقایق آگاه است و پیروانش او را خاتم انبیا خطاب کردند. به این دلیل بعد از محمد نیازی به آیات جدید نخواهد بود. اما علم امروزی از این جهت که آشکارا به نادانی جمعی راجب مهمترین سوالات اعتراف می کند، سنت منحصر به فردی از دانش است. داربین هرگز دانه می کند که خود او خاتم زیستشناسان است و همانا این خود اوست که معممای حیات را یک بار برای همیشه حل کرده. زیستشناسان، پس از قرنها تحقیقات گسترده علمی اعتراف می‌کنند که در مورد اینکه که مغز چطور آگاهی را می سازد هنوز توضیح خوبی ندارند. فیزیکدانان اعتراف می‌کنند که از دلایل مهبانگ یا انفجار بزرگ اطلاعی ندارند یا اینکه نمی‌دانند چطور می توان بین مکانیک کوانتوم و نظریه نسبیت عمومی سازگاری ایجاد کرد. در موارد دیگر، نظریات ضد و نقیض علمی خود نمایی می کنند که بر پایه شواهد دائما نوظهور قرار دارند. یک مثال اولیه است که هول بهترین روش برای اداره اقتصاد جریان دارد. اگرچه هر اقتصاددانی ادعا می کند که خودش بهترین روش ها را رو دارد اما این درک ها با هر بحران مالی و هر تغییری در نرخ سهام تغییر می کنند و این عموما پذیرفته شده که حرف آخر در اقتصاد هنوز گفته نشده. باز در موارد دیگری نظریات معینی وجود دارند که دائما با شواهد موجود تایید می شوند به طوری که همه نظریات دیگر در آن خصوص مدت هاست که به حاشیه رانده شده. چنین نظریاتی به عنوان حقیقت پذیرفته شدند اما هر کسی میداند که وقتی شواهد جدیدی به دست می آید که در تناقض با آن نظریه اولیه قرار بگیرد باید در آن نظریه تجدید نظر کرد یا آن را کاملا کنار گذاشت نمونه های بارز این موارد نظریه لایه‌های تکتونیک و نظریه تکامل است تمایل برای اعتراف به نادانی علم جدید را پویاتر، انعطاف پذیرتر و کنجکاوانه از هر سنت پیشین دانش ساخته. این امر قابلیت ما را در درک شیوه کارکرد جهان و توانایی ما را در ابداع فناوری‌های جدید بسیار گسترش داده. اما همزمان ما را با یک مشکل جدی مواجه کرده که اکثر پیشینیان ما با آن روبرو نبودند. فرض کنونی ما که همه چیز را نمیدانیم و حتی آن دانشی هم که اکنون داریم تجربی است بر استه های مشترکی تعمین می که امکان همکاری موثر میان میلیون ها بیگانه را ممکن می کند. اگر شواهد نشان دهند که بسیاری از آن استوره ها قابل تردیدند چطور خواهیم توانست صبات جامعه را حفظ کنیم؟ چطور جوامع کشورها و نظام بین و می توانند کارایی خود را حفظ کنند؟ تمام تلاش های جدید برای ثبات بخشیدن به نظام اجتماعی سیاسی راه دیگری ندارند بجز این که بر یکی از دو روش غیر علمی اتکا کنند. یک یک نظریه علمی را انتخاب کنند و برخلاف رویه های علمی رایج اعلام کنند که حقیقت جاودانی مطلق است. این همان روشی بود که توسط نازی ها که ادعا می کردند که سیاست های نجادیشان طبعات شواهد زیست شناختی هستند و توسط کمونیستها ها که ادعا می کردند که مارکس و لنین حقایق محض اقتصادی را پیشگویی کردند که هرگز باطل نخواهد شد در پیش گرفته شد. دو این را رها کنند و مطابق با یک حقیقت مطلق غیر علمی زندگی کنند. این استراتژی انسانگرایی لیبرال بوده که بر باوری جزمی بر ارزش‌ها و حقوق منحصر به فرد انسان‌ها استوار است. آموزه‌ای که خجولانه وجوه مشترک ناچیزی با بررسی‌های علمی در مورد انسان خردمند دارد. اما این نباید ما را شگفت‌زده کند. حتی خود علم هم باید بر باورهای ایدئولوژیک و مذهبی اتکا کند تا بتواند تحقیقاتش را محق جلوه دهد و پشتیبانی مالی طلب کند. با وجود این فرهنگ نوین، بسیار بیشتر از هر فرهنگ پیشین مایل به پذیرش نادانی ما بوده. یکی از عواملی که هماهنگی نظم نظمهای اجتماعی نوین را امکان پذیر کرده، رواج یک باور تقریبا دینی، به فناوری و روش تحقیق علمی بوده که تا حدودی جای باور به حقایق مطلق را گرفته. جزم علمی علم نوین جذمی نمیشناسد اما بر یک محور مشترک روش های تحقیقی و سوار است که همگی بر جمعآوری مشاهدات تجربی تاکید دارند، یعنی آنچه که بتوانیم با حداقل یک یا چند حس مشاهده کنیم و آنها را با کمک ابزار ریاضی در کنار هم قرار دهیم. انسان ها در طول تاریخ به جمعوری شواهد تجربی پرداختند، اما اهمیت این شواهد معمولاً محدود بوده. زمانی که تمام جوابهای مورد نیاز را داریم، چرا منابع گرانبها را برای مشاهدات جدید بیهوده تلف کنیم؟ اما از آنجا که انسان نوین میپذیرد که جواب بعضی از سوالات بسیار مهم را نمیداند، پس ضروری میداند تا دانش کاملاً جدید را جستجو کند. در نتیجه روش تحقیقی نوین حاکم ناکافی بودن اطلاعات قدیمی را بدیهی می داند و اکنون تأکید به جای مطالعه سنتهای قدیمی بر روی آزمونها و مشاهدات جدید است. وقتی مشاهدات کنونی در ستیز با سنت قدیمی قرار می گیرند، اولویت به مشاهدات داده می شود. طبعا فیزیکدانان که تیفهای کهکشانهای دوردست را تحلیل می کنند، باستانشناسان که یافته های شهری در عصر مفرق را مطالعه می کنند، و کارشناسان علوم سیاسی که به تحقیق درباره ظهور زهور کاپیتالیست می سنتها را نادیده نمی‌گیرند. آنها با مطالعه آنچه خردمندان پیشین گفته و نوشتن شروع می کنند. اما فیزیکدانان، باستانشناسان و کارشناسان علوم سیاسی آینده از همان سال اول دانشگاه می آموزند که رسالتشان در فراتر رفتن از آن چیزهایی است که انیشتین، هایندیش اشلیمن و ماکس وبر می دانستند. اما مشاهده به تنهایی علم محصوب نمی شود. برای درک جهان ناگزیریم مشاهدات را با نظریات جامعی مرتبط کنیم. سنت های پیشین معمولاً نظریاتشان را در قالب داستان فرموله می کردند. علم جدید از ریاضیات استفاده می کند. در کتاب مقدس قرآن، ودا یا در ادبیات قدیمی کنفوسیوس، نمودارها، معادلات و محاسبات زیادی نمی یافت. وقتی استور شناسی سنتی، و کتب آسمانی، قوانین کلی را می کردند آنها را به صورت حکایت و روایت تشریح می کردند نه در قالب اشکال ریاضی بنابراین اصول بنیادین دین مانوی ادعا می کرد که جهان عرصه کارزار میان خیر و شر است نیروی شر ماده را آفرید و نیروی خیر روح را آفرید انسانها گرفتار این دو نیرو و ناگزیر از انتخاب خیر به جای شر هستند اما پیامبرمانی تلاشی برای ارائه یک فرمول ریاضی نکرد که در آن موازنه قدرت میان این دو نیرو در انتخاب انسانی نشان داده شود. او هیچگاه محاسبه ای از برایند نیروهای عمل کننده در انسان که معادل با ضریب توان روح تقسیم بر میزان حجم پیکرش باشد را به دست نداده. این دقیقا همان چیزی است که دانشمندان در صدد تحقق آن هستند. در سال 1687، آیزاک نیوتون رساله اصول ریاضی فلسفه طبیعی را منتشر کرد که قطعا مهمترین کتاب در تاریخ نوین محسوب می شود. نیوتون در این اثر نظریه عمومی حرکت و تغییر را ارائه کرد. امتیاز برجسته نظریه نیوتن توان او در توصیف و پیش بینی حرکت تمامی اجسام در جهان از افتادن یک سیب از درخت تا رها شدن ستاره ها در فضا با سه قانون ساده ریاضی بود. از آن به بعد اگر کسی میخواست حرکت یک گلوله توپ یا یک سیاره را درک و پیش بینی کند خیلی ساده می جرم، جهت و شتاب این اجسام و نیروهای عمل کننده بر آن را محاسبه کند با قرار دادن این ارقام در معادله نیوتون موقعیت بعدی شیء مورد نظر قابل پیش بینی می این فرمول به گونه ای جادویی عمل می کرد تنها در اواخر قرن 19 بود که دانشمندان پس از بعضی مشاهدات فهمیدند که به خوبی همه چیز را نمیتوان با قوانین نیوتون سازگاری داد و این به انقلاب دیگری در فیزیک منجر شد و آن نظریه نسبیت و مکانیک کوانتوم بود. نیوتون نشان داد که کتاب طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده. برای مثال، بعضی از فصول این کتاب میتواند در یک معادله روشن خلاصه شود، اما محققینی که سعی می کردند اقتصاد و روانشناسی را به معادلات صرف نیوتونی تقلیل دهند، دریافتند که این عرصه ها دارای سطحی از پیچیدگی هستند که چنین افقهایی را تیره می کند. اما این به این معنی نبود که آنها باید از ریاضیات چشم بپوشند، تأیید دو ساله اخیر یک عرصه جدید ریاضیات به ظهور رسید که به جنبه‌های پیچیده‌تر و واقعیت توجه بیشتری نشان می‌داد و آن علم آمار بود. در سال 1744 دو کشیش پروتستان در اسکاتلند به نام‌های الکساندر رابستر و رابرت والاس تصمیم گرفتند تا یک صندوق بیمه عمر ابدا کنند که یک مستمری در اختیار بازماندگان بیوه و فرزندان کشیش فوت شده قرار دهد. آنها پیشنهاد کردند که هر کدام از کشیش‌های کلیسا مبلغ کمی از درآمد خود را به صندوق بپردازد که یک گذاری خواهد بود. اگر کشیشی فوت می کرد، بیوه او مبالغی از سود سهام صندوق را دریافت می کرد. این به بیوه امکان می داد تا بقیه زندگی خود را آسوده سپری کند. اما برای تعیین مبلغی که کشیشان می بپردازند بپردازند، تا صندوق به اندازه کافی پول برای عمل کردن به تعهداتش داشته باشد، وبستر و والاس مجبور بودند پیش بینی کنند چه تعداد از کشیشان سالانه می میرند و چه تعداد بیوه و یتیم از خود به جا گذارند و بیوه ها بعد از مرگ شوهرانشان چند سال زنده می مانند. به این دقت کنید که این دو کشیش چه کاری نکردند؟ آنها از خدا نخواستند جواب سوالشان را بدهد و در متون مقدس یا در لابلای آثار خداشناسان کوهن هم به دنبال جواب نگشتند. وارد مشاجرات انتزائی فلسفی هم نشدند این دو به عنوان اسکاتلندی اهل عمل بودند بنابراین با یک پروفسور ریاضی از دانشگاه ادینبورگ به نام کالگین مکلورن تماس گرفتند هر سه به جماوری اطلاعات راجع به سن هر کشیشی که میمرد پرداختند و از این اطلاعات برای محاسبه اینکه چه تعداد کشیش احتمالاً در هر سال معین خواهد مرد استفاده کردند کارانها بر پایه چندین دستاورد جدید در زمینه آمار و احتمالات قرار داشت یکی از اینها قانون اعداد بزرگ ژاکوب برنولی بود برنولی اصلی را تدوین کرد که بر اساسش اگر پیشبینی یک واقعه خاص مثل مرگ یک فرد معین مشکل می بود پیشبینی میانگین تعداد زیادی از اتفاقات مشابه با دقت زیاد امکان پذیر می باشد پس اگر مکلورن نمیتوانست با استفاده از علم ریاضی مرگ وبستر و والاس در سال بعد را پیش بینی کند، می‌توانست با در دست داشتن اطلاعات کافی با دقتی نسبی به وبستر و والاس بگوید که چه تعداد کشیش در سال بعد در اسکاتلند می‌میرند. خوشبختانه آنها آن اطلاعات لازم را داشتند. به خصوص جداول آماری موجود که ادموند هالی پنجاه سال قبل منتشر کرده بود برایشان قابل استفاده بود. حالی تعداد 1238 مورد تولد و 1174 مورد مرگ در شهر برسلو در آلمان را تجزیه و تحلیل کرده بود. جداول حالی مثلا نشان میداد که احتمال مرگ یک جوان در سال یک به صد است، در حالی که این احتمال در رابطه با یک فرد پنجاه ساله یک به سیون است. با تحلیل این ارقام ویبسر و والاس نتیجهگیری کردند که در هر زمان معین به طور متوسط تعداد 930 کشیش اسکاتلندی زنده می تواند وجود داشته باشد و به طور متوسط سالانه 27 کشیش می و از این تعداد 18 نفر یک بیوه از خود به جا پنج نفر از اینها که بیوهی از خود به جا نمیگذارند فرزندان یتیم به جا میگذارند و دو نفر از آنها که بیوه به جا میگذارند فرزندانی از ازدواج قبلی به جا میگذارند که هنوز به سن 16 سال نرسیدند آنها در ادامه حساب کردند که به طور متوسط چند سال طول می کشد تا بیوه های به جامانده فوت کنند یا ازدواج مجدد کنند ویبستر و والاس با بررسی این ارقام تخمین زدند که کشیشان عضو این صندوق چه مبلغی باید بپردازند تا کفاف هزینه های بازماندگانشان را بدهد. هر کشیش با پرداخت دو پند و دوازده شیلینگ و دو پنی در سال میتوانست تضمین کند که اش سالانه حداقل 10 ده پند دریافت خواهد کرد که در آن زمان مبلغ بالایی بود. اگر کشیش فکر می‌کرد که این مبلغ کفایت نمی‌کند، می‌توانست تا حد اکثر 6 پوند و 11 شلینگ و 3 پنی در سال بپردازد که تذمین می‌کرد که بیوهش مبلغ چشمگیر 25 پوند در سال را دریافت خواهد کرد. بر اساس محاسبات وبسر و والاس، صندوق آی‌دی برای بیوگان و فرزندان کشیشان کلیسای اسکاتلند میبایست در سال 1765 سرمایه ای معادل 58348 پوند در اختیار داشته باشد محاسبه آنها به گونه ای دقیق از آب درآمد وقتی آن سال فرا رسید موجودی صندوق 58347 پوند بود یعنی فقط یک پوند کمتر از آن براورد این حتی از پیشگویی های حبقوق، ارمیا و یوحنای قدیس هم دو رست در از آب درآمد امروز صندوق وبستر و والاس تحت نام اسکاتیش ویدوز یا بیوه های اسکاتلندی یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه و بازنشستگی دنیا است این شرکت با یک موجودی به ارزش 100 میلیارد پوند نه فقط ها بلکه تمام انواع مشتریان خود را تحت پوشش بیمه قرار داد محاسبه احتمالات مثل آنچه که توسط این کشیشان اسکاتلندی به کار گرفته شده پایه ای شد. نه فقط برای علم آمار که برای صنعت بازنشستگی و بیمه. این محاسبات همچنین بنیانی شد برای علم جمعیت چناسی که توسط روحانی دیگری به اسم رابرت مالتوس که وابسته به کلیسای انگلیس بود ابداع شد. جمعیت چناسی هم بنای نظریه تکاملی چارلز داروین شد. تحصیلات داروین در زمینه الهیات بود اگرچه معادله نیست تا پیش بینی کنند که چه نوعی از موجود زنده در چه مجموع شرایطی تکامل میابد اما ژنشناسان از محاسبات احتمالی استفاده می تا احتمال وقوع یک جهش ژنتیکی معین را در میان یک گروه معین محاسبه کنند الگوهای احتمالاتی مشابهی در شیوه تحقیقی اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی و دیگر عرصه‌های های علوم اجتماعی و طبیعی نقش مهوری بازی می کنند. حتی فیزیک هم سرانجام معادلات کلاسیک نیوتون را با انبوه احتمالات مکانیک کوانتوم تکمیل کرد. کافی است تا فقط نگاهی به تاریخ آموزش بیاندازیم تا دریابیم که این روند تا چه حد بر ما تأثیر گذاشته در خلال بخش اعظم تاریخ ریاضیات یک عرصه رمزالود بود که حتی افراد تحصیل کرده به ندرت به طور جدی به مطالعه آن پرداختند. در اروپای قرون وسطا، هسته آموزش مرکب از منطق، دستور زبان و علم نطق و بیان بود در حالی که آموزش ریاضی به ندرت از مرز علم سادهی حساب و هندسه فراتر می رفت. هیچ کس علم آمار نمی فرمانروای فرمان روای بلا تمامی علوم همانا علم الهیات بود. امروزه دانشیان معدودی به فراگیری علم نطق و بیان می پردازند. منطق به حوزه های مختلف فلسفه و الهیات در مدارس علوم دینی محدود می شود. اما تعداد هرچه بیشتری از دانشیان علاقمند به یا ملزم به فراگیری ریاضیات می شود. نیروی اقوا کننده برای علوم دقیق وجود دارد. از این رو دقیق نامیده می شود که از ابزارهای ریاضیات استفاده می کند. حتی آن عرصه آموزشی که بر اساس سنت بخشی از علوم انسانی بودند مثل زبانهای مردمی یا زبانشناسی و روان بشری یا همان روانشناسی، به طور فضاینده بر ریاضیات تکه می کنند و در پی معرفی خود به عنوان علوم دقیق هستند. آموزش های علم آمار اکنون بخشی از شروط پایه‌ای نه فقط برای فیزیک و زیست شناسی بلکه همچنین برای روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و علوم سیاسی شده. اولین واحد دانشگاهی اجباری دانشکری روانشناسی در دانشگاه محل خدمت خود من ای بر آمار و روانشناسی در تحقیق روانشناخ دیدام دارد. این ماده درسی در لیست آموزش های دانشجویان سال دوم روانشناسی است اگر کنفوسیوس، بودا، عیسی و محمد از کسی می‌شنیدند که برای درک ذهن انسان و علاج بیماری باید ابتدا به مطالعه آمار پرداخت کاملا گیج و مبهود می شدند. دانش قدرت است اغلب مردم به سختی علوم جدید را درک می کنند زیرا زبان ریاضی آن برای ذهن دشوار است و یافته هایش اغلب در تقابل با عقل سلیم قرار می گیرد. از میان هفت میلیارد جمعیت زمین چه تعداد به واقع از مکانیک کوانتوم، زیستشناسی سلولی و اقتصاد کلان سر در می آورند؟ اما با این وجود علم از جایگاه والایی برخوردار است زیرا توانایی جدیدی به ما می‌دهد. رئیس جمهورا و جنرال ها شاید از فیزیک هسته‌ای ای سر در نیاورند اما به خوبی از اثرات بمب هسته‌ای آگاهند. در سال 1620 فرانسیس بیکن یک بیانیه علمی با نام ابزار نوین انتشار داد. او در این اثر عنوان کرد که دانش قدرت است. آزمون واقعی دانش این نیست که صحت داشته باشد بلکه این است که ما را قدرتمند کند. دانشمندان معمولاً چنین فرض می کنند که هیچ نظریه ای صد درصد صحیح نیست. در نتیجه حقیقت آزمون ضعیفی برای دانش است. آزمون واقعی کارایی و سودمندی است. نظریه ای که ما را قادر می کند تا کارهای جدیدی انجام دهیم دانش به حساب می آید. صده ها علم ابزار و امکانات جدیدی برایمان به ارمغان آورده. بعضی از اینها ابزاری فکری هستند، مثل آنهایی که آمار مرگ و میر رشد اقتصادی را پیش بین می می‌کنند. اما مهمتر از آنها ابزارهای تکنولوژیک هستند. پیوند ایجاد شده میان علم و تکنولوژی چنان محکم است که مردم امروزه این دو را با هم اشتباه گیرند. ما اغلب گمان می کنیم که توصیعی تکنولوژی جدید بدون تحقیقات علمی غیر ممکن و تحقیقات علمی که به تکنولوژی جدید نینجامد بیسمر است. در حقیقت ارتباط میان علم و تکنولوژی پدیده ای بسیار جدید است. تا مقطع 1500 علم و تکنولوژی دو عرصه کاملا جدا از هم بودند، پیوند این دو توسط بیکن در اوایل قرن هفدهم اندیشه انقلابی بود این پیوند در تایی قرون هفدهم و هجدهم محکمتر شد اما گره آن در قرن نوزدهم زده شد حتی در 1800 بسیاری از حاکمان در پی یک ارتش نیرومند بودند و اغلب سوداگران متنفذ که خواهان کسب و کاری موفق بودند زحمت گذاری روی تحقیقات در فیزیک، زیستشناسی یا اقتصاد را به خود نمی‌دادند. اما منظور من این نیست که استثنایی بر این قاعده وجود ندارد. یک تاریخدان مجرب می‌تواند الگویی بر هر چیزی بیاورد. اما یک تاریختان باز هم مجربتر میدانند که این الگوها تنها موارد غریبی هستند که نمای کلی را کدر می کنند. به بیان کلی می گفت که اغلب حاکمان و صداگران پیشانوین برای توسعه تکنولوژی جدید روی تحقیقات مربوط به ماهیت جهان سرمایهگذاری نمیکردند و اغلب متفکرین هم کوششی نمیکردند تا یافته را به ابزارهای تکنولوژیک تبدیل کنند حاکمان در موسسات آموزشی سرمایه میکردند می کردند که وظیفهشان رواج دانش سنتی برای پشتیبانی از نظام حاکم بود. گاه اینجا و اینجا فنناوری جدیدی ابدا می شد که حاصل کار محققینی نبود که با روش تحقیقی منظم کار کنند، بلکه نتیجه کار صنعتگران آموزش ندیده به روش آزمون و خطا بود. تولید کنندگان گاری سالها و سالها گاری های مشابهی با مواد یکسان تولید میکردند و بخشی از سود خود را جهت تحقیق برای تکامل گاری های جدید کنار نمیگذاشتند. طرح ساختار گاری ها گاهی بهتر میشد اما این معمولا ناشی از مهارت نجار محلی بود که هرگز پا به محیط دانشگاه نگذاشته بود و شاید حتی سواد خواندن و نوشتن هم نداشت. این در مورد بخش خصوصی و دولتی هر دو صدق میکرد. دولت های کنونی تقریباً در همه زمینه های سیاست مندی خود برای یافتن راه حل به متخصصید مراجعه میکنند، از مسئله انرژی و بهداشت گرفته تا دفع زباله. اما پادشاهی های قدیم به ندرت به اینگونه عمل میکردند، تضاد میان جدید و قدیم که بخصوص در زمینه تسلیحات از قدرت فزاینده مجموعه نظامی صنعتی خبر میداد، بخشی از معادله را از قلم انداخت. او می‌بایست به کشورش در مورد مجموعه علمی تسلیحاتی صنعتی هوشدار می‌داد زیرا جنگ‌های امروزی محصولات علمی هستند. قدرت های تصلیحاتی جهان بخش اعظم تحقیقات علمی و پیشرفت‌های فناوری بشری را ابداع سرمایهگزاری و هدایت می کنند. زمانی که جهان در آتش جنگ جهانی اول می سخت، طرف طرفین در جنگ دانشمندان را فراخواندند تا آنها را از آن بنبست خارج کنند و ملت را نجات دهند مردان سفید سفیدپوش به این ندا پاسخ دادند و اتشی سوزان برای صلاح معجزوار جدید آزمایشگاه‌ها را فرا گرفت. هواپیمای شکاری، گازهای سمی، تانک زیردریایی، مسلسلهای باز هم مؤثرتر، تجهیزات توپخانه، تفنگ و بمب. علم نقش باز هم مهمتری در جنگ جهانی دوم بازی کرد. در تاواخر 1944 آلمان در حال باختن جنگ بود و شکست قریب الوقوع مینمود. یک سال قبل ایتالیایی ها که متحدین آلمان بودند، موسولینی را سرنگون کردند و در مقابل متفقین تسلیم شدند. اما آلمان همزمان که ارتش های انگلیس، آمریکا و شوروی نزدیک میشدند، به مبارزه ادامه داد. یکی از دلایلی که به سربازان و شهروندان آلمانی امیدواری می‌داد که همه چیز هنوز تمام نشده، باور آنها به دانشمندان آلمانی بود که قرار بود با سلاح‌های اعجاز مثل موشک و هواپیماهای جت سرنوشت جنگ را عوض کنند. در حالی که آلمانی‌ها روی موشک و جت کار می‌کردند، سازمان پروژه آمریکایی منهتن هم با موفقیت بمب اتم می‌ساخت. به مرور زمان، در اوایل اوت 1945، زمانی که بمب آماده شد، آلمان تسلیم شده بود، اما ژاپن کماکان به جنگ ادامه میداد. داد. نیروهای آمریکایی تصمیم گرفتند، جزایر ژاپن را تسخیر کنند. ژاپنیها ها قسم خوردند که در مقابل این حجوم ایستادگی می کنند و تا آخر نفس می جنگند. اما تمام دلایل این باور را به وجود می آورد که این یک تهدید توخالی نبود. جنرال های آمریکایی به رئیس جمهور هنری ترومن گفتند که اشغال ژاپن به قیمت جان یک میلیون سرباز آمریکایی تمام خواهد شد و دامنه جنگ را تا سال 1946 طولانی تر خواهد کرد. ترومن تصمیم گرفت که از بمب جدید استفاده کند. ژاپن پس از انفجار دو بمب اتمی دو هفته بعد بدون قید و شرط تسلیم شد و جنگ خاتمه یافت. اما نقش علم تنها محدود به سلاحهای تهاجمی نمی شود بلکه نقش عظیمی در تجهیزات دفاعی هم دارد. امروزه بسیاری از آمریکایی ها اعتقاد دارند که مقابله با تروریسم نیاز به یک راه حل تکنولوژیک دارد نه سیاسی. بر اساس این باور فقط کافی است که چند میلیون دلار بیشتر در اختیار صنعت نانوتکنولوژی قرار دهیم تا آمریکا مغزهای مصنوعی جاسوس به قارهای افغانستان، استحکامات یمن و قرارگاه‌های آفریقای شمالی روانه کند. با این کار جانشین اسامه بن لادن حتی نمیتواند یک فنجان قهوه درست کند بدون آنکه های جاسوس سازمان سیا خبر آن را به مرکز فرماندهی لانگلی برسانند. با اختصاص دادن چند میلیون دلار بیشتر روی تحقیقات روی مغز هر فرودگاهی مجهز به اسکنرهای فوق پیشرفته ی امارای خواهد شد که بلا فاصله افکار شوم را در مغز مردم تشخیص خواهد داد آیا این به واقع عملی است؟ کسی نمی داند. آیا ساخته مگزهای بیونیک و اسکنرهای فکرخان عاقلانه است؟ لزوما نه با این حال، در این لحظه که شما این سطور را میخوانید وزارت دفاع آمریکا در حال سرمایهگذاری به مبلغ میلیون دلار روی نانوتکنولوژی و آزمایشگاه های مغزی برای کار روی این پروژه ها و اندیشههایی نظیر این است. یک چنین شیفتگی نسبت به تکنولوژی تسلیحاتی از تانگ ها و بمب اتمی گرفته تا مگز جاسوس پدیده عجیب دوران اخیر است. طوریانه نوزدهم اغلب انقلاب‌های تصحیحاتی محصول تغییرات سازمانی بودند نه تحولات تکنولوژیک هنگامی که تمدن‌های ناشناخته برای اولین بار با هم مواجه می‌شدند شکاف‌های تکنولوژیک گاه نقش مهمی ایفا می‌کردند اما حتی در چنین مواردی افراد کمی به این فکر می‌کردند که عمدن چنین شکاف‌هایی را به وجود آورند یا تقویت کنند اغلب امپراتوریها به لطف قدرت جادویی تکنولوژیک ظهور نمی کردند و حاکمانشان چندان به دستاوردهای تکنولوژیک فکر نمی کردند. اعراب امپراتوری ساسانی را به مدد کمان و شمشیر پیشرفتتر شکست ندادند و سلجوقیان هم برتری تکنولوژیک بر بیزانسی ها نداشتند. مغولها هم به اتکای سلاحهای جدید پیشرفت چین را فت نکردند. در واقع در تمام این موارد، جناح مقلوب تکنولوژی برتری از نظر نظامی و غیر نظامی داشت. ارتش روم یک نمونه شاخص و است. این ارتش بهترین ارتش دوران خود بود، اما از نظر تکنولوژیک برتری خاصی نسبت به کارتاج، مقدونیه یا امپراتوری سلوکی نداشت. برطریش در گروه سازماندهی موثر نظم آهنین و زخیره عظیم نیروی انسانی بود. ارتش روم هرگز یک بخش توسعه و تحقیق به وجود نیاورد و سلاحهایش هایش تای قرنها کمابیش بیش یک ماند. اگر سپاهیان اسکیپو امیلیانوس ژنرالی که کارتاژ را با خاک یکسان کرد و نومانتی ها را در قرن دوم قبل از میلاد شکست داد، به طور ناگهانی 500 سال بعد در عصر کنستانتین کبیر ظهور می‌کرد، امکان خوبی برای شکست کنستانتین میتوانست داشته باشد. حال تصور کنید برای ژنرالی از چند قرن قبل، مثلا ناپلئون چه اتفاقی می توانست بیفتد؟ اگر سپاه خود را علیه یک تیپ زرهپوش نوین فرماندهی میکرد. ناپل اون جنجوی بسیار مدبر بود و مردان او هم جنگندگانی هرفهی بودند. اما تمام این مهارت‌ها در مقابل نیروی تسلیحاتی نوین میتواند بیفایده باشد. همانند روم در چین باستان هم اغلب جنرال ها و فیلسوفان فکر نمیکردند که وظیفه ای در قبال ایجاد سلاح‌های جدید داشته باشند. مهمترین اختراع نظامی در تاریخ چین باروت بود اما تا آنجا که می‌دانیم باروت به طور تصادفی هنگامی که کیمیاگران داویی در جستجوی اکسیر حیات بودند اختراع شد نقش بعدی باروت باز هم گویاتر است میتوان گمان کرد که کیمیاگران داویی چین را به ارباب جهان بدل می‌کنند اما چینیها در حقیقت از این ترکیب جدید عمدتا برای ترقه استفاده می‌کردند حتی وقتی امپراتوری سونگ در مقابل اشغال مغلها فروپاشید، هیچ امپراتوری برای نجات آن یک پروژه منحتن قرون وستایی با سرمایه روی سلاح برای روز مبادا ایجاد نکرد. تنها در قرن پانزدهم در حدود 600 سال بعد از ابداع بارود توبهای جنگی به یک عامل تعیین کننده در جنگهای آفرواسیایی بدل شدند. چرا انقدر طول کشید تا این ماده کشنده برای اهداف نظامی استفاده شود؟ زیرا باروت در زمانی ظاهر شد که نه شاهان، نه محققین و نه سوداگران هیچ کدام فکر نمی‌کردند که یک تکنولوژی تسلیحاتی جدید بتواند آنها را نجات دهد یا ثروتمند کند. این وضعیت در قرون 15 هم و شانزدهم تغییر کرد، اما دیویست سال دیگر هم گذشت تا اینکه حاکمان به گذاری روی تحقیقات برای تکامل سلاح های جدید علاقه نشان دادند. تدارکات و استراتژی در مقایسه با تکنولوژی کماکان تأثیر بسیار بیشتری بر نتیجه جنگ می‌گذاشت. ماشین جنگی ناپل اون که نیروهای اروپایی را در استرلیس در همکوبید کما بیش مسلح به همان تسلیحاتی بود که ارتش لویی 16 هم, هم از آنها استفاده می‌کرد. خود ناپلئون علی رغم آنکه افسر توپخانه بود علاقه کمی به صلاح جدید داشت اگرچه دانشمندان و مخترعین تلاش می‌کردند او را متقاعد کنند تا روی توسعه ماشین‌های پرنده زیردریایی و موشک سرمایه‌گذاری کند علم صنعت و تکنولوژی نظامی تنها در ابتدای نظام کاپیتالیسم و انقلاب صنعتی در هم آمیز شدند اما وقتی این پیوند مستحکم شد، به سرعت جهان را دگرگون کرد. آرمان پیشرفت. تا مقطع انقلاب علمی فرهنگهای بشری به پیشرفت باور نداشتند. آنها گمان می کردن که اثر طلایی به گذشته تعلق دارد و جهان اگر رو به ویرانی نباشد، در رکود به سر می برد. پیروی از خرد اعصار میتوانست گذشته شیران را بازگرداند و نبوغ بشر احتمالاً میتوانست این یا آن صورت از زندگی روزمره را اصلاح کند. با این حال تصور میشد که دانش و مهارت بشری امکان غلبه بر مشکلات اساسی جهان را به ما نمی دهد. اگر حتی محمد، عیسی، بودا و کنفوسیوس که هر چرا که میباید میدانستند قادر به از بین بردن قهتی، بیماری، فقر و جنگ از دنیا نبودند، حال چطور میتوان انتظار داشت که ما بتوانیم چنین کنیم؟ بسیاری از عدیان اعتقاد داشتند که روزی مسیح موعود ظهور خواهد کرد و به تمام جنگ‌ها، قحطی‌ها و حتی خود مرگ پایان خواهد داد. اما این تصور که بشر این کار را با یافتن دانش جدید و اختراع ابزارهای نوین بکند نه تنها مزهک بلکه گستاخی جلبه میکرد. داستان برج بابل، داستان ایکاروس، داستان گلم و استوره های بیشمار دیگر به بشر میآموخت که هر تلاشی برای فراتر رفتن از محدودیت های بشری به گونه ای اجتناب نپذیر منجر به یعص و فاجعه خواهد شد. وقتی فرهنگ نوین پذیرفت که چیزهای مهم بسیاری وجود دارند که راجع به آنها نمی و وقتی اعتراف او به نادانی با این اندیشه پیوند خورد که کشفیات علمی می تواند نیروی جدیدی به ما بدهد، مردم به این گمان افتادند که شاید پیشرفت واقعی امکان پذیر باشد. همچنان که علم یکی یکی شروع به حل مسائل غیرقابل حل کرد بسیاری به این باور رسیدند که انسان با به کار گرفتن دانش جدید میتواند بر هر مشکلی فائق آید فقر بیماری جنگ قحطی کهولت و حتی خود مرگ دیگر سرنوشت اجتناب ناپذیر بشر نبود بلکه فقط حاصل نادانی ما بود یک نمونه شناخته شده سائقه است بسیاری از فرهنگ ها سائقه را که یک خدای خشمگین برای مجازات گناهکاران می‌دانستند. در نیمه قرن هجدهم بنجامین فرانکلین در یکی از معروفترین آزمایش های علمی تاریخ بادبادکی در حین یک جریان رعد و برق هوا کرد تا نشان بدهد که رد و برق چیزی بیش از یک جریان ساده الکتریکی نیست. مشاهدات تجربی فرانکلین در پیوند با دانش او درباره ویژگی انرژی الکتریکی او را قادر کرد تا میله برقی را اختراک کند و خدایان را خل صلاح کند. فقر مثال دیگری در این رابطه است. بسیاری از فرهنگها فقر را بخش جدای ناپذیر از این جهان میدانستند. بر اساس متن مقدس عهد جدید، کمی بعد از مصلوب شدن مسیح، زنی بدن او را با روغن گرانبهایی به ارزش 300 دینار جلا داد. شاگردان عیسی زن را برای هدر دادن چنین مبلغ گذافی سرزنش کردند و به او ایراد گرفتند که توانست چنین پولی را به فقرا بدهد. اما عیسی در دفاع از زن گفت فقرها را همیشه در میان خود خواهید داشت و همواره امکان کمک به آنها وجود دارد. اما مرا همیشه نخواهید داشت. امروزه افراد کمتر و کمتر و مسیحیان کمتر و کمتری در این خصوص با عیسی هم نظرند. فقر به طور فزاینده ای به عنوان یک مشکل تکنولوژیک قلم داد می شود که می توان آن مداخله کرد. خرد جمعی اکنون این است که خط های مبتنی بر آخرین دستاوردهای کشاورزی، اقتصادی، پزشکی و جامعه‌شناسی می توانند فقر را ریشهکن کنند. در حقیقت، قسمت‌های بسیاری از جهان از حادترین اشکال فقر رها شدند. در طول تاریخ جوامع از دو نوع فقر در رنج بودند: فقر اجتماعی که گروهی از مردم را از موقعیت‌هایی که در اختیار گروه دیگر است محروم می‌کند، و فقر زیستی که حیات انسان را در نتیجه فقدان خوراک و سرپناه در معرض خطر قرار می دهد. فقر اجتماعی شاید هرگز نتواند نتاندیشککن شود اما فقر زیستی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان چیزی است که به گذشته ها تعلق دارد. تا چندی پیش اکثر مردم جهان در نزدیکی خط فقر قرار داشتند که در آن افراد از کالری لازم برای بقای طولانی محروم بودند. حتی اشتباهاتی کوچک در محاسبات یا بد اقبالی می توانست به آسانی انسانها را به زیر خط فقر بکشاند. فجایع طبیعی و سوانه ساخته دست بشر اغلب کل یک جمعیت را به سوی پرتگاه میکشید و باعث مرگ میلیون نفر میشد. امروزه اغلب مردم دنیا دارای یک امنیت اقتصادی اولیه هستند. از بیمه ها و برنامه های اجتماعی دولتی گرفته تا انواع موسسات خیریه غیر دولتی محلی و بینمللی، از مردم در مقابل تیر روزی کامل محافظت می کنند وقتی فاجعهی کل یک منطقه را دربر می گیرد تلاش های امدادرسانی جهانی معمولا در پیشگیری از بدترین فجایع مؤثر می افتند. مردم هنوز از تحقیر و مسائب متعددی که در رابطه با فقر است رنج می برند اما در اکثر کشورها کسی از قهدی نمی میرد. در واقع در بسیاری از کشورها اکثر مردم به خاطر چاقی در معرض خطر مرگ قرار دارند نه گروسنگی. پروژه گیلگمش از میان تمام مشکلات به ظاهر غیر قابل حل بشر یکی از آزاردهنده ترین، جالب ترین و مهمترین مشکلات مرگ بوده قبل از دوران نوین اکثر ادیان و ایدئولوژی ها مرگ را سرنوشت اجتناب ناپذیر ما میدانستند. علاوه بر این اغلب ادیان مرگ را سرچشمه اصلی معنای زندگی تعبیر کردند سعی کنید اسلام مسیحیت یا دین باستانی مصر را در دنیایی بدون مرگ تصور کنید این عقاید به مردم میآموزند که با مرگ کنار بیایند و به جای سعی در غلبه بر مرگ و جستجوی زندگی جاوید بر این کره خاکی، امید خود را به زندگی بعد از مرگ بنا کنند. بهترین تفکرات در پی معنی به مرگ هستند، نه گریختن از آن. همین امر در اون مایه کهنترین کوهندترین است که به ما رسیده. گیلگمش، استوره سومری های باستان. قهرمان این استوره، قدرتمندترین و تواناترین مرد دنیا، شاه گیلگمش، فرمان روای اروک است که میتوانست هر کسی را در نبرد شکست دهد. روزی بهترین دوست گیلگمش آنکیدو درگذشت. گیلگمش روزهای زیادی در کنار پیکر دوستش نشست و او را نظاره کرد تا اینکه متوجه شد که کرمی از سوراخ بینی او به بیرون خزید. گیلگمش در آن لحظه دچار وحشت شدیدی شد و عهد کرد که هرگز نمیرد. بنابراین به جستجوی راهی پرداخت که بر مرگ غلبه کند. گیلگمش سفری به انتهای جهان کرد، شیرهایی را کشت، با مردان اقربی در افتاد و راه خود را به جهان اموات باز کرد. او در آنجا ملوان رود مرگ، مهراب ارشانابی را در هم شکست و اتانا آخرین بازمانده سیل کوهن را پیدا کرد. ولی در جستجوی خود به جایی نرسید و مثل گذشته، همچون موجودی فانی دست خالی به خانه بازگشت، اما اکنون، به معرفت جدیدی دست یافته بود گلگمش آموخت که وقتی خدایان انسانها را آفریدند مرگ را به عنوان سرنوشت حتمی آنها مقرر کردند و از این رو انسانها باید با مرگ کنار بیایند پیروان پیشرفت خود را در این باور شکست پذیر شریک نمی دانند. برای انسان علمی مرگ نه یک سرنوشت محدوم بلکه فقط یک مشکل فن نیست انسان ها از این جهت نمی میرند که خدایان مقرر کردند بلکه به دلیل کاستی های فنی گوناگون مثل سکته قلبی، سرطان و عفونت می میرند و هر مشکل فنی هم راه حل فنی دارد. اگر تپش قلبی دچار اختلال شود میتوان آن را با یک دستگاه تنظیم کننده زربان تحریک کرد یا با قلب جدیدی تعویز کرد. اگر سرطانی سربرآورد میتوان آن را با دارو یا پرت و درمانی نابود کرد. اگر باکتری های تکثیر شوند میتوان آن را با آنتی بیوتیک مهار کرد. حقیقت این است که ما در حال حاضر نمیتوانیم تمام مشکلات فنی را حل کنیم، اما با آنها دست و پنجه نرم میکنیم. بهترین مغزها وقت خود را برای معنی دادن به مرگ تلف نمی کنند بلکه به جای آن به بررسی دستگاه های زیستشناختی، هرمونی و ژنتیک مسبب بیماری ها و کهولت می داروهای جدید، درمانهای انقلابی و اندامهای مصنوعی ابدا می کنند تا بتوانند زندگی را طولانی تر کنند و شاید روزی اسرائیل را جواب کنند. تا همین اواخر هیچ دانشمندی یا هر کس دیگری با این سراحت صحبت نکرده همه تاکید میکردند قلبه بر مرگ عجب چرندی؟ ما فقط سعی میکنیم بیماریهای سرطان سل و آلزایمر را درمان کنیم انسانها از فکر کردن به مرگ تفره میرفتند زیرا بسیار نامشخص بود چرا توقعات غیرمنطقی در خود ایجاد کنیم؟ ما اکنون به جایی رسیده ایم که میتوانیم صریحا در این باره صحبت کنیم پروژه اصلی انقلاب علمی این است که به انسان زندگی جاوید اتا کند. حتی اگر با فائق آمدن بر مرگ به عنوان هدف فاصله داشته باشیم، همکنون به هدف‌های دست ایم که تا همین چند قرن پیش غیر ممکن می نمود. در سال 1199، شانه چپ شاه ریچارد شیردل مورد هدف پیکانی قرار گرفت. چنین جراحتی امروز جزئی تلقی می شود؟ اما در سال 1199 در نبود آنتی ها و روش های موثر عفونت زدایی این زخم گوشتی کوچک عفونت کرد و باعث قانقاریا شد تنها راه متوقف کردن پیشرفت قانقاریا در اروپای قرن دوازدهم قطع عضو عفونی شده بود اما کتف را نمیشد قطع کرد به این گونه قانقاریا به تمام بدن ریچارد شیردل سرایت کرد و کسی هم نتوانست به شاه کمکی کند او دو هفته پس از تحمل رنج فراوان درگذشت تا قرن 19 هم هنوز بهترین پزشکان هم نمیدانستند چطور میتوان از عفونت و پوسیدگی بافت‌های بدن جلوگیری کرد در بیمارستان‌های صحرایی پزشکان از ترس قانقاریا به طور معمول دستها و پاهای سربازان را حتی به خاطر زخم‌های کوچک قطع می‌کردند این قطع اوزف همچون دیگر کارهای پزشکی مثل کشیدن دندان بدون بیهس کردن و بیهوشی صورت می گرفت. تازه در عواست قرن 19 بود که اولین داروهای بیحس کننده مثل اتر، کلوروفرم و مورفین در پزشکی غرب وارد استفاده روزمره شد. قبل از ظهور کلوروفرم، چهار سرباز می دست و پای رفیق مجروح خود را بگیرند تا دکتر عضو آسیب دیده را عره کند. در فردای نبرد واترلو در سال 1815 میلادی هایی از دست و پای قطع شده در نزدیکی محوطه های صحرایی دیده میشد. در آن روزها نجاران و قصابانی که وارد ارتش میشدند، اغلب در اختیار یگان پزشکی قرار می گرفتند، زیرا جراحی نیازمند شناخت بیشتری از استفاده مرسوم از شاق و اره بود. اکنون دو قرن بعد از واترلو همه چیز به حدی تغییر کرده که قابل بازشناسی نیست. قرصها، آمپولها و جراحیهای پیشرفته ما را از خیلی بیماری‌های نجات می دهند که روزی حکم مرگ داشتند. اینها همچنین از ما در مقابل دردها و ناخوشیهای روزمره بیشماری محافظت می کنند که انسانهای پیشانوین آنها را به عنوان جزی از زندگی می دانستند. میانگین طول عمر از حدود 25 سال به 40 سال و 60 سفتاد سال در تمام دنیا و در کشورهای پیشرفته به حدود 80 سال افزایش یافت. مرگ بیشترین اقب نشینی را در میان کودکان داشت. تا قرن بیستوم بین یک سوم سو تا یک چهار کودکان جوامع کشاورزی به سند بلوغ نمی رسیدند. اکثر کودکان در اثر بیماریهایی چون دیفتیری سرخک و آبله از بین می رفتند. در انگلستان قرن هفدهم از هر هزار کودک 150 کودک در همان سال اول تولد می و یک سوم از کل کودکان به سن پانزده سال نمی رسیدند. امروز در انگلیس از هزار کودک فقط پنج نفر در سال اول تولد و تنها هفت نفر قبل از پانزده سالگی می میرند. ما اگر آما را کنار بگذاریم و به چند داستان توجه کنیم شاید بتوانیم مفهوم این ارقام را بهتر بفهمیم. یک نمونه گویا خانواده ادوارد اول شاه انگلیس که بین سالهای 1237 تا 1307 و همسرش ملکه النور که بین سالهای 1241 تا 1290 زندگی می کرد است. کودکان آنها از بهترین شرایط و بیشترین توجه ممکن در اروپای قرون وستا بهرمند بودند. آنها در قصر زندگی می کردند. هر چه که می خواستند قضا می و به اندازه کافی لباس گرم داشتند و بخاری هایشان هم پر از هیزم بود. آنها از تمیزترین آب موجود استفاده می کردند و لشگری از خدمه و بهترین پزشکان در اختیارشون بود. منبع زیر به شانزده فرزندی که ملکه الینور بین سالهای 1255 و 1284 زایید اشاره دارد. یک، یک دختر بینام متولده 1255 که هنگام تولد مرد. دو، یک دختر به اسم کاترین که در یک سالگی یا سه سالگی مرد. سه، یک دختر به اسم جوان که در شش ماهگی مرد. چهار یک پسر به اسم جان که در پنج سالگی مرد پنج یک پسر به اسم هنری که در شش سالگی مرد شش یک دختر به اسم النور که در بیست و نه سالگی مرد هفت یک دختر بینام که در پنج ماهگی مرد هشت یک دختر به اسم جوان که در سی و پنج سالگی مرد نه یک پسر به اسم آلفونزو که در ده سالگی مرد ده یک دختر به اسم مارگاریت که در و هشت سالگی مرد. یازده یک دختر به اسم برنجریا که در دو سالگی مرد. دوازده یک دختر بینام که کمی بعد از تولد مرد. سیزده یک دختر به اسم مری که در 55 و پنج سالگی مرد. چهارده یک پسر بینام که کمی بعد از تولد مرد. پانزده یک دختر به اسم الیزابت که در سی و چهار سالگی مرد. و شانزده یک پسر به اسم ادوارد. ادوارد کوچکترین پسر آنها سالهای خطرناک کودکی را پشت سر گذاشت و بعد از مرگ پدر به عنوان شاه ادوارد دوم بر تخت پادشاهی انگلیس نشست. به عبارت دیگر برای النور شانزده زایمان لازم بود تا مهمترین وظیفه یک ملکه انگلیسی را برآورده سازد و برای همسرش یک جانشین مزکر به دنیا ورد. مادر ادوارد دوم باید زنی با صبر و بردباری استثنایی بوده باشد. اما زنی که ادوارد به عنوان همسر انتخاب کرد به اسم ایزابلا فرانسوی اینطور نبود. او افرادی را اجیر کرد تا ادوارد را در سن 43 سالگی بکشند. تا جایی که می النور و ادوارد اول زوج سالمی بودند و دارای بیماری ارسی خاصی نبودند که آن را به فرزندانشان منتقل کنند. با این وجود 10 تا از شانزده فرزندشان یعنی شست و دو درصدشان در کودکی مردند و فقط شش نفر از مرز یازده سالگی عبور کردند و فقط سه نفر یعنی هجده درصد از سن چهل سالگی گذشتند. علاوه بر این زایمان ها، الینور به احتمال بسیار قوی چند سخت جنین هم داشته. به طور متوسط، ادوارد و الینور هر سه سال یک فرزند از دست میدادند. ده فرزند، یکی بعد از دیگری. برای یک زوج امروزی، این تقریبا یک امر غیر ممکن است. پروژه گیلگمش، یعنی جستجو برای زندگی جاودان، چه مدت به طول خواهد انجامید؟ ست سال؟ 500 سال؟ هزار سال؟ وقتی به یاد بیاوریم که در سال 1900 چه اطلاعات ناچیزی درباره بدن انسان داشتیم و ظرف تنها یک قرن چقدر دانش جدید که کردیم در ما خوشبینی ایجاد می کند. متخصصین جنتیک اخیراً موفق شده اند سن متوسط کرم‌های نوع کاینور هابدایتیس الگانس را چند برابر کنند. آیا این کار را در مورد انسان خیردمند هم می توانند بکنند؟ متخصصین نانوتکنولوژی در حال تکمیل یک سیستم دفاعی مصنوعی هستند که مرکب است از میلیون‌ها نانوروبات که در بدن ما قرار می‌گیرند و شریان‌های خونی مسدود شده را باز می‌کنند. با ویروس‌ها و باکتری‌ها میجنگند، سلول‌های سرطانی را از بین میبرند و حتی روند پیری را معکوس می‌کنند. تنها معدودی از محققین جدی وجود دارند که اظهار می کنند که تا سال 2050 بعضی از انسانها نامیرا خواهند شد. نه جاودانی به این دلیل که هنوز می توانند به دلیل حوادث بمیرند اما نامیرا به این معنی است که در صورت فقدان آسیب جدی زندگیشان می‌تواند به طور نامحدود افزایش یابد. صرف نظر از اینکه پروژه گیلگمش موفق شود یا نه از دیدگاهی تاریخی شگفتانگیز است که اغلب ادیان و ایدئولوژی‌های های اصر کنونی مرگ و آخرت را از معادلات خود حذف کردند تا قرن هجدم مرگ و آخرت برای ادیان پایه اصلی مفهوم زندگی محسوب میشد در آغاز قرن هجدهم ادیان و هایی مثل لیبرالیسم، سوسیالیسم و فمینیسم تمام علاقه خود را به آخرت از دست دادند. برای یک کمونیست بعد از مرگ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ برای یک کاپیتالیست چه اتفاقی خواهد افتاد؟ برای یک فمینیست چه اتفاقی خواهد افتاد؟ جستجو برای پاسخ به این سوال‌ها در آثار مارکس، آدام اسمیت یا سیموندو بوار بی سمر خواهد بود. تنها دین نوینی که هنوز برای مرگ جایگاه محوری قائل است ناسیونالیسم است. ناسیونالیسم در لحظات دشوار و در فضایی شاعرانه به شهدای راه وطن وعده زندگی جاوید در خاطره عمومی را می‌دهد. اما این وعده چنان مبهم و نامشخص است که حتی اکثر ها به درستی نمی‌دانند به آن چه کار کنند. حامی خرپول علم ما در عصر تکنولوژی زندگی می‌کنیم. بسیاری معتقدند که علم و تکنولوژی پاسخ تمام مسائل ما را دارد فقط لازم است که برای دانشمندان و متخصصین عرصه علم را فراهم کنیم تا آنها بهشت را همین جا روی زمین برای ما تدارک ببینند اما علم فعالیتی نیست که در یک فضای متعالی اخلاقی یا معنوی در ورای سایر فعالیت‌های بشری صورت بگیرد علم، مانند دیگر بخش‌های فرهنگ انسانی، به دنبال مصلحت‌های اقتصادی، سیاسی و دینی شکل میگیرد. علم فعالیتی است بسیار پرخرج. یک زیستشناس که در جستجوی درک دستگاه ایمنی بدن است، به آزمایشگاه، لوله‌های آزمایش، مواد شیمیایی و میکروسکوپ‌های الکترونی نیاز دارد. البته اگر به دستیاران متخصصین برق لولهکشها و نزافتچیها اشاره نکنیم اقتصادانی که در جستجوی ایجاد یک الگوی اعتباری برای بازار است باید کامپیوتر تهیه کند برای ذخیره و ثبت عظیم اطلاعات نظامی به وجود آورد و برنامههای پیچیدهای برای پردازش اطلاعات تهیه کند باستانشناسی که در پی درک رفتار شکارگر خوراکجوی است، باید به سرزمینهای دور سفر کند، به حفره ویرانههای باستان و یافتن استخوانهای فسیلی و آثار باستانی بپردازد. تمام اینها خرج دارد. تایه 500 ساله اخیر علم نوین به دستآوردهای شگفت انگیزی نائل شده که وسیعاً با یاری و حمایت دولتها، سوداگران، بنیادها و اهداکنندگان خصوصی و اختصاص میلیاردها دلار سرمایه برای تحقیقات علمی میسر شده این مبالغ عظیم در مقایسه با آنچه گالیله، کریستوف کولوم و داروین به دست دادند، خدمات بسیار ارزندهتری برای شناخت هستی، نقشه برداری از کره زمین و دستبندی دنیای وحش انجام دادند. اگر این نوابق متولد نشده بودند، کشفیاتشان احتمالا توسط دیگران صورت می گرفت. اما اگر چنین بودجه مناسبی وجود نداشت، هیچ نبوق درخشانی نمی‌توانست جای خالی آن را پر کند. مثلا اگر داروین متولد نمی‌شد، ما امروزه نظریه تکاملی را به آلفرد راسل والاس نسبت می‌دادیم که فقط چند سال بعد از داروین و مستقل از او نظریه تکامل از طریق انتخاب طبیعی را تدوین کرد. اما اگر حمایت مالی قدرت‌های اروپایی برای تحقیقات جغرافیایی، جانورشناسی و گیاهشناسی در سراسر دنیا نمی‌بود، نه داروین و نه والاس هیچ کدام اطلاعات تجربی لازم برای توسعه نظریه تکامل را نداشتند و احتمالاً حتی تلاشی هم نمی‌کردند. چرا میلیاردها سرمایه از خزانه های حکومتی و تجاری به آزمایشگاه‌ها و دانشگاه‌ها سرازیر شد؟ در محافظ دانشگاهی بسیاری به قدری ساده اندیشند که به علم خالص اعتقاد دارند. آنها گمان می که حکومت‌ها و شرکتها از سر خیرخواهی از آنها پشتیبانی مالی می کنند تا به هر پروژه تحقیقی که برایشان خوشایند است بپردازند. اما این توصیف چندان با واقعیت حاکم بر پشتیبانی مالی علم سازگار نیست. اکثر تحقیقات علمی از این رو مورد پشتیبانی قرار می‌گیرند که کسانی فکر می کنند که این تحقیقات می توانند به هدفی سیاسی، اقتصادی یا مذهبی کمک کنند. برای مثال، در قرن شانزدهم شاهان و بانکدارها مبالغ هنگفتی را صرف سفرهای اکتشافی جغرافیایی به سراسر دنیا کردند. اما سکه‌ای هم به مطالعات روانشناسی کودک اختصاص ندادند، دلیلش این بود که شاهان و بانکدارها گمان می کردند که دانش جغرافیایی جدید آنها را قادر می سازد تا به فتح سرزمین های جدید و برپایی امپراتوری های تجاری بپردازند. در حالی که مطالعه در روانشناسی کودک هیچ نفعی برایشان نداشت. در دهه 1940 دولت‌های آمریکا و شوروی مبالغ سرسام‌آوری از منابع را به مطالعات فیزیک هسته‌ای اختصاص دادند ولی بهای به تحقیقات باستانشناسی دریایی ندادند. آنها گمان می‌کردند که مطالعات فیزیک هسته‌ای آنها را قادر می‌کند تا به ساخت سلاح‌های هسته‌ای بپردازند در حالی که تحقیقات باستانشناسی زیر آب هیچ کمکی برای پیروزی در جنگ به آنها نمی‌کرد. خود دانشمندان همیشه از آن مسلحت های سیاسی، اقتصادی و دینی که در پشت منابع مالی هستند اطلاعی ندارند. در حقیقت بسیاری از دانشمندان از روی کنجکاوی روشن محض عمل می کنند. بنابراین دانشمندان به ندرت دستور کار علمی را دیکته می کنند. حتی اگر میخواستیم بر روی علمی که آلوده به مطامع سیاسی، اقتصادی یا مذهبی نباشد سرمایهگذاری گذاری کنیم، نمیتوانست عملی و ممکن باشد. منابع به هر حال محدودند. از یک نماینده مجلس بخواهید تا یک میلیون دلار دیگر برای تحقیقات پایعی به بنیاد ملی علم اختصاص دهد و او محقانه سوال خواهد کرد که آیا بهتر نیست که این مبلغ به آموزش معلمین اختصاص داده شود یا به صورت معافیت مالیاتی صرف کمک به کارخانه در ناحیه انتخابی او شود که با مشکل روبروست؟ برای هدایت منابع محدود مالی ناگزیریم به سوالاتی از این قبیل جواب دهیم که چه چیزی مهمتر است و چه چیزی خوب است و اینها سوالات علمی نیست علم می تواند توضیح دهد که چه چیزی در دنیا وجود دارد پدیدهها چگونه عمل می‌کنند و در آینده چه روی خواهد داد اما علم بر حسب تعریف هیچ ادعایی برای دانستن این ندارد که آینده چگونه باید باشد فقط ادیان و ایدئولوژی ها هستند که به دنبال چنین سوال هایی میگردند این دوگانگی را در نظر بگیرید دو شناس از یک مؤسسه تحقیقی واحد با تخصص حرفه ای مشابه هر کدام تقاضای یک میلیون دلار برای پروژه تحقیقی جاری خود کردند پروفسور اسلوگورن میخواهد روی بیماری تحقیق کند که پستانهای های گاو را افونی می میکند و موجب ده درصد کاهش تولید شیر می شود. پروفسور اسپروت در پی یافتن جواب به این سوال است که آیا گاوها به خاطر جدایی اجباری از گوساله‌هایشان از نظر روحی دچار رنج و عذاب می‌شوند یا نه با فرض اینکه منابع مالی محدود است و اختصاص بودجه به هر دو پروژه ممکن نیست از کدام از این دو پروژه باید حمایت مالی کرد برای این سوال پاسخ علمی وجود ندارد، فقط پاسخ‌های سیاسی، اقتصادی و مذهبی وجود دارد. بنابراین واضح است که در دنیای امروز اسلوگورن امکان بیشتری برای دریافت منابع مالی دارد. بیماری پستان گاوها از نظر علمی جالبتر از شرایط روحی گاوها نیست بلکه از آنجا که قرار است صنعت تولید لبنیات از نتیجه تحقیق سود ببرد مقتضیات سیاسی و اقتصادی صداگرانه بر حقوق حیوانات اولویت می‌یابد شاید در یک جامعه هندوی مؤمن که در آن گاوها تقدس دارند یا در جامعه‌ای که اعضایش مدافع حقوق حیوانات هستند، پروفسور اسپروت موقعیت بهتری برای اخذ کمک مالی داشته باشد. اما تا وقتی که او در جامعه‌ای زندگی می‌کند که در آن ارزش تجاری شیر و سلامت شهروندانش بر احساسات گاوها می‌چربد، باید تقاظانامه خود را به گونه تحریر کند که با این فرضیات هماهنگ باشد. مثلا باید تشریح کند که افسردگی گاوها منجر به کاهش تولید شیر می شود. اگر ما دنیای روحی گاوهای شیرده را درک کنیم می داروهایی بسازیم که خاست گاوها را برای شیردهی بیشتر تا میزان ده درصد افزایش دهد. علم به تنهایی از تعیین اولویت‌های خود ناتوان است و بنابراین نمیتواند نمی‌تواند مشخص کند که با یافته‌هایش چه کار کند. برای مثال از یک زاویه نگرش علمی خالص برای ما ناروشن است که با اطلاعات فضاینده خود درباره ژنتیک چه کار باید بکنیم؟ آیا باید از این اطلاعات برای مداوای سرطان استفاده کنیم؟ یک نژاد ژنتیک مهندسی شده ی فوق بشر به وجود آوریم یا گاوهای های شیرده با پستان بسیار بزرگ را مهندسی کنیم. واضح هست که یک دولت لیبرال یا کمونیست یا یک حکومت نازی و یا یک شرکت تجاری کاپیتالیستی از همان یافتههای علمی برای اهداف کاملا متفاوت استفاده می کنند و هیچ دلیل علمی برای این یا آن انتخاب وجود ندارد. به طور خلاصه تحقیقات علمی تنها در پیوند با دین یا ایدئولوژی معینی شکل می‌گیرند ایدئولوژی هزینه تحقیقات را توجیه می‌کند و در ازای آن بر دستور کار علمی اعمال نفوذ می‌کند و تعیین می‌کند که با کشفیات چه باید کرد از این رو بررسی دستاوردهای فیزیکدانان، زیستشناسان و یا جامعه شناسان پاسخی برای این سوال به ما نخواهد داد که انسان چطور به جای هر هدف دیگری، پروژه انفجار اتمی عالمگردو و, و سفر به ماه را انتخاب کرد. ما ناگزیریم آن نیروهای ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی که فیزیک، زیستشناسی و جامعه شناسی را شکل دادند در نظر داشته باشیم تا بهتر درک کنیم که چرا علم در جهاتی هدایت می شود و از جهات دیگر قافل می موند. ما باید به دو نیرو توجه خاص داشته باشیم، امپریالیسم و کاپیتالیزم. تداوم رابطه متقابل میان علم امپراتوری و سرمایه به طور قطع مهمترین موتور محرکه تاریخ تی پانصد ساله اخیر بوده در فصلهای بعدی به تحلیل چگونگی این رابطه خواهیم پرداخت در ابتدا نگاهی خواهیم کرد به چگونگی جفت شدن این دو موتور دوقلوی علم و امپراتوری با یکدیگر و سپس اتصالشان به پمپ پول کاپیتالیسم